ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قبل از هر چیز همه ما از الله زلجلال سپاسگزار الله جلال هستیم که همه من و شما را توفیق شرکت در جلسه انایت فرمود بنده سلام پرسوز پر درد پدر روحانیم، تاج سرم، فداه و ابی و امی حضرت شیخ الاسلام را به شما ابلاغ میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حقا مردم عزیز سوران، سیب سوران شعن شما آن بود که بعد از این که بلبلان باغ نبوت هر یکی به نحوی اینجا کلام زیبای پروردگار را تلاوت کردند و هر یکی رو پروردگار به نوعی اکرام کرده بود با الهان زیبا الهان داوودی حق آن بود که بعد از اینها حضرت شیخ الاسلام حفظه الله صحبت میکردن یا مفتی محمد قاسم جان صحبت میکردن یا استاد بدری حفظه الله همین در عجبم چطور قرعه به نام اید بنده گناهکار افتاد به دستور ایشان که دیشب تماس تلفنی داشتند در خدمت شما هستیم امیدواریم که پروردگار اساتید بزرگوار ما را علمای بزرگوار ما را همه که هر جا هستند الله حفاظتشان بفرماید و امیدوارم که خدا اون سوز حضرت شیخ الاسلام را و سوز علمای ربانی را پروردگار در قلب همه من و شما جای بدهد و الله من و شما را از اون سوز واقعی از اون سوز حقیقی سوز قرآنی همه ما را بهرمند بسازد واقعا خوشحال و خورسندیم که در خدمت شما مردم خونگرمه که قرار داریم و می به خودمون که در جمع شما هستیم این جلسه عنوانش هست محفل انس با قرآن چقدر زیباست و قرآن چه کتاب انسان سازی است از اولین قاری که اینجا استاد اسدی شروع کرد سوره مبارکه تاها را تاها طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت لمن واقعا وقتی انسان به معانی و به مفاهیم آیات توجه میکند حیران میشود انسان وقتی خودش را نگاه میکند و قرآن را نگاه میکند قرآن عزیم و شن را میبیند خدا گواست انسان میگه از این زند انسان میمرد بهتر بود زمین دهان را باز میکرد و انسان تو زمین میرفت بهتر از این زندی که با این وضعیت که ما ارتباط با قرآن داریم قرآن چی کتابی است تاها خطابان حضرت تاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقه ما محمد صلى الله عليه وسلم قرآن را نازل نکردیم برای مشقت این مشقت نیس قرآن چی کتابیس إلا تذکرت لمن يخشى این پندیست برای کسی که ترس دارد از الله قرآن چی کتابیست؟ قرآن چی کتاب است وقتی استاد اسدی تاها را میگفت تو یک حال دیگه رفتیم وقتی اون حافظ سپاهی قاری سپاهی آمد و شروع کرد آیات دیگر را اوه چه انسان قرآن چه دریایی بی ساحل است أن شروك <responsible> hmm <أخ Dir> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. يا أخي يا إن شاء الله خطاب ميكنه. لكن القرآن ربي كوهان ازيل میکردیم. إنه أсхوف الله تك تك کمی شدن. اینجا سوال پیش میاد بشر تو یک تکه گوشتی چرا قرآن به قلبت عمل نکرد چرا این قرآن تو را درست نکرد قلبت که جایگاه پروردگار محبت الهی است چرا این قلبت با این همه قرآن که خاندی پر از حسادت پر از تنگ نظری پر از دروغ پر از تهمت چرا این قرآن تو آدم نکرد این قرآن را که الله میگه اگر من بر کوها نازل میکردم اینا تیکه تیکه میشدن کوه این که یک تیکه گوشتیه چرا این تکه گوشت اصلاح نشود؟ این قرآن درس میده به ما قرآن هر حرفش هر آیهش علاج. علاج نسخه علاج برای بشریت از بای بسم الله گرفته تا سین و ناس قرآن کتاب انسان سازی است انسان میسازد قرآن قرآن کتابی است که خدا گواست برای بشر الله این را فرستاد که بشر را عزت بده شرافت بده کرامت بده بشر را قرآن چه کتاب انسان سازی است بعد از ایکی آیات تمام شد استاد دیگر قاری سلیمان چه آیاتی را خواند؟ که دار الاخره نجعل حال الهینا لا یریدون علوان فی الأرض ولا فصادا چطور؟, چطور دار جراهی میکند بشر را؟ بشر آخرت میخواهی؟ آخرت جایگاه است که لا یریدون علوان فی الارض ولا فصادا اونها در دنیا نباید دنبال برتری باشند نباید اونا تو دلشون این حالت بیاد که من بر دیگران برترم همین حس برتری در بشر این مولد کبر غرور خودپسندی حسادت همه و همه از اولون هست وقتی که بشر در اولون میره وقتی بشر خودش رو بر دیگران ترجیح میدهد و دیگران را کم میداند و خودش را بالا میداند به این بدبختی ها گرفتار میشه این بدبختی ها این حسادت ها این دورنگی ها این همه بر علیه انسانیت حرف زدن این همه از اولون فل ارض کسی که به اولون فل ارض رسید او به فساد گرفتار میشه او به فساد اخلاقی گرفتار میشه او به بدبختی ها میفتد آخرت جای این کسا نیست آخرت جای کسانی است که برتری جویی نکنند. اونها نباید به دنبال برتری باشند، اونا باید انسان متواضع فروتن تا اونها را خدا عزت بده عزت مردم عزیز به خدا قسم به رب کعبه قسم این قانون الهی است این سنت الهی عزت کسی می یابد که دنبال عزت نباشد شهرت کسی می یابد که دنبال شهرت نباشد این قانون الهی سنت الهی است که هر کسی که دنبال شهرت باشد مطمئن باشد که ذلیل می شود شهرت فقط و فقط زمانی به انسان میرسد که تو دنبالش نباش نباش تو در حل لباسی تو در میدانی، تو برای الله کار کن بذار شهرت را برای او قرآن چقدر زیبا میگه من که نیورید العزه فل الله العزت و جمیعا تو لام میفهمن فل الله لام اختصاصه فقط و فقط عزت پیش الله تعالی است عزت میخواهی با الله سهل کن عزت میخواهی قیبت مردم نکن عزت میخواهی حسادت نکن عزت میخواهی تنگ نظری نکن عزت میخواهی فقط و فقط در رضایت الله فلله آگل عزت این که گاه گاهی میبینی بشر بر علیه بشر تاخت و تاز می دنبال عزت این چرا دیگران عزت دارم من ندارم چو از خدا دوری با الله نزدیک شو امکان نداره بی عزت بی عزتی فقط و فقط دوری از الله تعالی این آیات را اگر انسان بخواد ایناها را تفسیر کند سالها وقت میگیرد ولی من چون چون دستور پدر روحانی حضرت شیخ الاسلام فدا و ابی و امی پیش شما حرف میزنم اگر نه همون اول دو کلمه صحبت می کردم. ولی آیاتی که اساتید خاندن چه آیاتیه ولی هر آیهی که هر قاری می این خجالت میکشید شرم میکرد که بابا این ثروت عظیم این قرآن عظیم و الشان با شماست چرا اینقدر تو در حسرت و بدبختی هستی اون قاری سپایی صفات پروردگار هو الله هو الله هو الله الذي لا إلاغ إلاغ. لا إله الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز يعني خدا غالب است دنبال مغلوب نرو چرا دنبال مغلوب ها میری چرا پیش پروردگار نمیری یا ایوها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی و الحمید قرآن چه اینه که انسان وقتی قرآن را فکر میکند بیاد شعر اقبال میفتد فاشگویم آنچه در دل مزمر است این کتابی نیست و چیزی دیگر است اقبال این شعر رو تسنوی نمیخواند، اقبال این شر رو به حرافی نمیخواند، اقبال وقتی به عمق قرآن میره به اون معرفت حقیقی قرآن فهمی میبرد این شیر از دل از عمق عرفان اقبال بیرون میشه یا اون شاعر دیگر که میگوید گر اصای لا اله داری بدست هر طلسم خوف و را خواهی شکست هر که حق باشد چجانند در تنش خم نگردد پیش باطل گردنش گر عصای لا اله داری اصای لا اله قرآن عظیم و کسی که قرآن دارد هر طلسم خوف و را خواهی شکست خوف نداری چون با یک قد پروردگاری با یک ذات قوی عسیز حکیم قالب قنی تو با چه ذاتی حیف خدایی حیف. ننگ بر ای که خدا دارد و دنبال مخلوق بیفتد ننگ بر ملتی که قرآن دارد و تعریف و تمجید از دیگران میخواهد چرا تعریف و تمجید دیگران به خدا قسم نه تو دنیا به خیرت هست نه به آخرت به خیرت هست شما بررسی کنید یکی از مهلکات اخلاقی یکی از بدبختی ها خدا من و شمارن ریاست از ریاکار مفلستر وجود نداره چرا؟ مال میده غریب ملیارده ها خرج میکند الله بلندش میکند قیامت میگه تو برای مردم دادی مردم تو را بگه ثروتمند و مردم به تو گفتن موزدم گرفتی این رو میگه بفرستی به جهنم چه بدبختی مال میدی جان میدی و آخرم به جهنم چه بدبختیست وقتی کسی که خدا دارد این قوی الله الله خدا کدوم خدا قرآن گوش کن الله لطیف بعباده الله لطیف بعباده یرزق من و هو القوی العزیز زعیف نیست خاکم بردهن رب بیداری قوی از قوی بخوا از قوی بخوا دنبال ضعیف نرو دنبال عزتی پیش قوی برو همه کار درست میشه چه آیات زیبایی خاندن تا رسیدیم به استاد چهارم. چه زیبا. و سار ي الى مغفره من ربكم <سؤال> قران زنده حرف میزنه با انسان قرآن را چرا گفته کتاب زنده این بعد از 1440 سال قران را الان که قاری تلاوت میکنه خدای میگه الان داره نازل میشه و سار إلى مغفرة من ربكم وجنة أرزها السماوات والأرض أعدت للمتقين قرآن كتابي قرآن كتابي متقين ميجا كيان متقيا <ميجي> الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ و العافین عنین الناس اهل که خشف کند بداند که با قرآن رابطه ندارد اهل قرآنی که مردم را معاف نکند بداند که از قرآن رنگ نگرفته ولو اینکه قرآن بشه ولو اینکه حافظ تمام احادیث بشه ولو اینکه که مفسر بشه ولی وقتی نتونه خشفش را فرو ببرد بداند که فقط حامل الفاظ قرآن است قرآن کتابی است، قرآن چقدر جراحی میکنه بشر را، قرآن تنگ نظری ها را مردود میداند، قرآن حسادت ها را مردود میداند، همه اون کسان بدانند که صاحبان قرآنند، بزرگترین اگر مفسر و محدثه، ولی اگر تو سینهش چین هست، بغز هست، حسادت هست، بداند که او با قران هیچ ارتباطی نداشته قریب. او نامش مفسره اون نامش مولویه اون نامش حافظه قرآن چقدر زیباست قرآن را بخوانیم، همه بخانیم یکی صحیح خواندن یکی از حقوق قرآنه یکی, قرآن یکی از حقوقشه یکی دیگر از حقه های قرآن عمل به قرآنه الله من شما را عامل بگرداند الله همان ترکی صدیق اکبر را، عمر فاروق را، عثمان غنی را، علی مرتضا را الله قرآن داد، عمل به قرآن توفیق داد، خدا نصیب همه من شما بگرداند قرآن عجیب درس آزادگی است، قرآن درس آزادگی است وقتی کسی که به قرآن عمل میکنه آزاده است، آزادانه کار میکنه. چیزی با جلسه ای بود به امید آن روزی که همه به قرآن عمل کنیم همه عمل کنیم مردم عزیز به خدا قسم اگر ما به قرآن عمل کنیم سندگی ما تو دنیا جنته جنت تو همین دنیا تو جنتی اینکه در منجلاب فقر انسان قرار گرفته این که در منجلاب اخلاق بد قرار گرفته این که اخلاقی دارد دوری از قرآنه قرآن را بیا قرآن همه را درست میکنه یا <تصفيق> ایوه الناس قد جاءتكم کم من ربی کم این پندی از جانب پروردگار شماست اون خدایی که شما را خل کرده ای پندیست پند و اندرزیز، یعنی چی پند و اندرزی؟ یعنی نجات شماست این نجات شماست مویزتون من ربکم و شفا اولی ما فی الصدور قرآن شافیه اون امراض باطنی شماست اون حسادت ها را قرآن از بین میبره لفاظی از بین نمیبرد. قرآن از بین میبره اون حس غیبت کردن مردم قضاوت بر مردم یکی از اعمالی که بشر رو هلاک میکند نماز انسان را نابود میکند تلاوت انسان را نابود میکند حج انسان را نابود میکند اینه که قضاوت بر علیه دیگران آخه تو چی میدانی اون بنده خدا چه هست چرا اصلا خدا به تو اجازه دارد تو قضاوت کنی خدا به اجازه داده تو چی می که پیش خدا او چقدر مقربه؟ تو از چی می دانی که دنبال مردم قضاوت می کنی؟ بزرگتری بزرگترین جاهل، بزرگترین بدبخت اونه که به دنبال اعمال دیگرانه، سر می تو زندگی دیگران، الله نجات بده. این چقدر صفت کسیفیه، سال هشتاد و یک، که در مرکز هندوستان بودیم جنام مولانا ابراهیم لار اونجا یکی بود که در سخنرانیش نشسته بودیم سال 81 خیلی جمله اونجا عجیبی گفت در رابطه با کسی که دنبال یا دیگران هست گفت عجیب جمله ای گفت گفت وقتی که انسان اعمال بد انجام میدهد بر اثر هر اعمال خوی یک حیوان را میگیرد بعد گفت کسی که دنبال عیب مردم هست و میخواد همیشه بر علیه مردم کار کند، این بلا تشبیه صفت خوکه. الله رحم کنه. خوک میگو قضایشو در گندگی جستجو میکنه. این کسی که دنبال گندگی عیب مردم هست، این صفت خوکه. این صفت انسان نیست. انسان را چقدر عزت داده چقدر کرامت داده چقدر شرافت داده لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ما انسانها را در بهتری سیلت و صورت خلق کردیم و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم في البر والبحر چقدر زیبا میگه الله تعالی الله تعالی چقدر زیبا چقدر زیبا واقعا بشر وقتی به قرآن عمل میکند، از فرشتگان مقربتر میشه. شود. فرشتها بین سه مخلوق مردم عزیز، یک مخلوق خدا خلق کرده فقط وظیفه دارد، فرشتگان. یک مخلوق خدا خلق کرده فقط غریزه دارد، حیوانات. یک مخلوق خدا خلق کرده که هم قریزه دارد و هم وظیفه دارد، بشره. جن و بشر هم غریضه دارند هم وظیفه دارند فرشتگان فقط وفقطیفهدرندریضه ندارند و حیوان فقط غریزه دارد بشر اگر پا را بگذارد بر غریزه و بر وظیفه عمل کند یعنی به قرآن عمل کند از فرشته بالاتر میره ولی اگر بشر پا را بر قرآن خاکم بر دهن گذاشت و عمل نکرد به غریزه بہاداد و به غریزه میدان داد او از حیوانم پستر میشه اولائک الانعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون اللهم من نجات بده اللہ من شوار نجات بده بعد از این اساتید حقا حقا از سروده زیبای بلبل مکی حافظ محمد عمر خمر حفظه الله استفاده کردیم چه درست درسته این من و شما را بها و هوای مدینه منوره برد ولی خدایی بگیم بدون تعارف بگیم چقدر با صاحب روز ارتباط داریم چقدر خدایی چقدر با صاحب روزه باید سیدنا بلال مدعی بشه که میگه شهد و محمد بیهوش میشه بیهوش میشه این ارتباط با روزه آن حضرت صلی علیه و سلم چقدر عجیب اون پیانبری یک روز به خودش راحتی نگذاشت یک لحظه نگذاشت برای من و شما تا روزی زنده بود گریه کرد تک تک من و شما را در میدان عرفات گریه کرد ای الله سید را ببخش ای الله فلانی را ببخش تک تک ما را و به تک تک امتیش هر یکی از من و شما مخاطب آن حضرت بودیم تک تک من و شما تا قیام قیامت تمام ما مخاطب آن حضرت هستیم برای ما گریه کرد برای ما داد و فریاد کرد در میدان عرفات و حتی تو میدان محشر که همه اللامندوی رحمه هلامی تو یک کتابی که همه بریشانند یک صدایی بلند میشه از گوش کناری امتی امتی, امتی هر که به حال خودش تو میدان إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ای اهل قرآن ای اهل قرآن، به خدا قسم اوناره که خدا حفظ قران داده اوناره که خدا علم قرآن داده اوناره که خدا فقط به تاج و به تاج طالب علمی اونارو الله تعالی مزین کرده به خدا قسم اگر میلیاردها سال به سجده شوق بیافتیم خدایی اگر میتونیم شکر این نعمت رو من شما ادا کنیم خدا من و شما رو گلچین کرده و نخت توکر آاتخوان و نختر و توکر فست علی ما عجیبه و نخت توکر هیچ مدالی برای حضرت موسی الان بین عليه صلات بالاتر از این نبود که الله میگه من تو را انتخاب کردم الله همون الله منو شما هم. اعمال موسوی انجام بدیم الله منو و شما را هم انتخاب میکنه من و شما هم اعمال محمدی انجام بدیم خدا منو و شما را کمک میکنه ست درصد قرآن علاجی های قرآن را بخانیم قرآن عمل کنیم به دیگران برزانیمش قرآن نسخه داره دروس پیش در یک اداره بودیم یک مدیر کلی میگفت یکی قرار بوده سر من کلاه بساره خیلی کلاه بوده اگر من امضا می کردم میلیارد ها پول به حساب او می رفت. بدبخت می شدم ما همون نشسته بودیم گفتم قرآن نسخه داده اگر می خواید توی مدیر کل از شیاطین انسی نجات کنی قرآن نسخه داده به هر روزی که تو اداره وارد می این آیه رو وَقُرْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْ كَسُلْطَانًا نَصِيرًا اینو بخون یالله تعالی تراب بیممیشی در مقابل حرفهای حرفها و حربهای شیاتی ننسی کسی نمی تره تو کلاه بساره تو با وضو بیا پشت میز بشین و این آیات را بخون حتی تو خانه وارد بشی یا بخور و قر رب ادخلنی مدخله صدق این نسخه چه نسخه تو خانه وارد بشی این را بخون ان شاء الله دعوا بین شما و زنت رخ نمیده بد اخلاقی بین شما و فرزندان رخ نخواهد داد هر مریزی داری مریزی جسمی داری یک بار درود شریف بخوان یک بار ام امرم امران فانا یک بار درود یک بار این یک بار درود دیگر بمال به اون جایی که جسمت مشکل داره امکان نداره که خدا علاجش نکنه قران چیک قرآن چی کتاب اقتصادی؟ قرآن فقط نگفته برو دور کد نماز بخوان قرآن تو را جراحی میکند به فقر گرفتاری قرآن بخوان وعمر اهلک بی صلاحات علیها لا نسألوک رزقا نحن نرزقا قرآن میگه به فقر گرفتار شدی قرزداری پریشانی وامر اهلک بالصلاه نسخه اقتصادی اهل تو بگن نماز بخون واستبر عليها خودت هم بر نماز سبر کن لا نسالک رزقا نحن نرزق اق نسخه اقتصادیه جای دیگر تو سوره طلاق و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قران به خدا قسم الان میدونم همین دنیا میدونیم که تو میدان محشب تنها چیزی که من و شما افسوس بخوریم برای قرآنه برای قرآنه چرا؟ اونجا الله تعالی بلند میکنه چطور اینجا ما تو جلسه نشستیم چطور همه اینجا نشستی. چطور خوش داریم که نام ماره یکی بگیرد چقدر خوشمون میاد اسم ماره یکی بگیرد اونجا شوخی نیست اونجا همینطوره اونجا حقیقیه. اینجا بلکه اسم منو شما را بگیرن اصلا پیش بارگاه اله، الهی مقبول نباشه ولی اونجا اسمی را که گرفتند مقبول الهی است اونجا دیگه شوخی نیست اونجا همه این مدان محشر بلند میکنن فلانی فرزند فلانی بلند شو به مدال افتخار مغفرت از کجا؟ از قرآن این قصرها قرآن این نعمت قرآن میگه ای باب قران کنار من بود و من از قرآن غافل بودم اونجا حساسوز میخوره امروز اگر یکی در دنیا از من و شما کمی جلو میزنه کمی جلو چی در میدان مقام چی در میدان مالی دل ما میگه عجب کاش که من میداشتم اونجا همینطوره اونجا رقابت عجیبه اونجا همه میخوان کاش که ما را اللهین اکرام و عزاز را میکرد کاش قرآن چی که داشتو کنید یک نمونه ای من به شما بگم الله تعالی به هیچ کسر هیچ پدر و مادری تاج نمیزند اما حافظ قرآن بلند میکنه بلند شو پدرشو بیار مادرشو بیار در روایت هست که خداوند متعال به دستان بلا کیفش تاج را بر سر پدر و مادر حافظ قرآن میزند اشوخی نیست ای چه عظمتی. بارها به طلاح میگیم سر کلاس طالب جانه به خدا قسم اگر تو کوره خاکی پادشاهی تو هست تو پادشاهی ولی پادشاهی تو به دنیا عوض نکن تو به دنیا نفروش دنیا همه و همه قرآن گفت قلب فضل الله و برحمت ای طالب علم تو بین رحمت خدا تو به این حفظ قرآن خوش باشید چرا؟ هو خیر و مما یجمعون او بهتر از تمام این چیزهایی که اهل دنیا جمع کرده همین حفظ تو قرآن تو از همه بالاتره و واقعا هم همینطوره واقعا همینطوره الله به من شما فهم بده الله به منش فهم قرآن بده. الله به منش رو توفیق عمل به قرآن بده. چه کتاب زیبایی چقدر زندگی ها آره را درست میکنه چ اکرام و احاز خدایی حیف که یک تالی قرآن یک کامل قرآن این گرفتار بدبختی میشه حیف خداایی اگه خدای ناکرده مبتلا شدیم توبه کنیم تو بکنی همه دنیا را با چشم زیبا نگاه کنی همه را به کچکترین غم مردم غم بخور به شادی مردم شادی کن خوش نباش که یکی شکست بخوره خوش نباش که یکی بدبخت میشه او چقدر بلا تشپی کسیفیه که به غم دیگران به شکست دیگران خوشحال میشه الله من و شما را نجات میده الله مشکلات دین و دنیای منشوار حل بفرماید. خیلی امیدواریم بر همین کلمات شکسته که گفتیم خدا منشوار عامل بگرداند. و واقعا جای تشکر سپاس دارد از دست کاران این جلسه. که زحمت کشیدند، لطف کردن همت کردند و از توفیق پروردگار بهره مند شدند. باید واقعا تشکر کرد که این جلسی زیبا و من جا دارد خدا گواه به عنوان یک برادر کوچک مولوی جمعه ربانی یعنی ازش تشکر کنم احسن به حمتت من این مسجد یک سال قبل اومدیم اینجا ولی خانه خدا را چقدر زیبا چقدر منمتزازی کردی چقدر باین با د... که نماز گذار میاد خوش میشه. همانطور که الله تعالا از نظر ظاهر این آباد کرده خدا از زر معنوی همیشه آبادش بگرداند پروردگار. همانطور که این مرحوم که قبر و مرقدش هم انجام الله قبرش را پر نور بگرداند و اون اسس... ما اوم... گمان ما همینه که شال الله اسسه علاج داده شده این چهار دیواری. و انشالله امیدواریم که خدا روز به روز لحظه به لحظه ال رونقش بده. این چهار دیواری و همه چهار دیواره های دینی ما را چهار دیواری های خانه های ما را الله تعالی محبت الفت سمییت الله در میان همه ما بیاورد و واقعام جا دارد که از که قرآن را خوندم واقعا اساتید. این لهنه ها را خدا به شما داده خدا را شاکر باشی، خدایی خدا را شاکر باشید قاری وقتی تلاوت می کند و در حین تلاوتش مثل اساتید فکرش با پروردگار باشد به خدا قسم اون تلاوتش سنگ ها را آب میکنه. یک قاری باید با این لحنش بزرگترین دایی باشد و با بسم اللهی که شروع می کند همرای اون زیبایی صوت، زیبایی لحن، این باید سنگ ها را آب کند و با چنان وقتی میشینه به پای قرآن بگه الله تعالی من و مستمین را الله تعالی همه ما را رنگ قرآن بده و میده پروردگار این قرآن شوخی نیست شاعت الله بخاری رحمه الله مشهور بود گفت نظری قرآن بخواند. به بمهس قرآن میخواند سربازان انگلیسی به می سلمان میشدن گفت نظری قران بخونه شاه فقط همین نمیذاشتن صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه را گفتن بعد بره از مکه بیرون وقتی که یکی از مشکی زمانتش را کرد یک شرط گذاشت یک شرط نگفت میلیارد بده دلار بده گفت نه گفت فقط باش تو مکه ولی کنار کعبه نماز نخوانه نخوانه وقتی این شروع میکنه نماز را غلامان ما کنیزان ما زنان ما مردان ما از نماز صدیق اکبر متاثر میشن تیوانه میشن مدهوش میشن قرآن چه کتابیه ای ای الله نصیب من شما بگردانه همیشه اتا الله بخاری سه روزی تو یک سلولی کردن قرآن اینه قرآن اینو میگن سه روز تو یک سلول سه روز یک شیر گروسنهی رو تو سلول کردند بعد سه روز راهاش کردند تو سلول شعطال الله بخاری که شعطال الله بخاری از بین ببره بعد از مدتی آمدن تا سبحان الله این شیر دوزانو زده جلوی شعطال الله بخاری و داره پاهای شعطال الله بخاری رو لیس میزنه با زبانش این قرآنه قرآن تو سلول خواب بود ماری رو فرستادن از این تعلیمی آفتاق و بروشات الله رو بزن دید که آمد مار به مار گفت برگرد کسی که تو را فرستاده برو اون رو بزن برگشت همون افسر رو زن. این قرآن این قرآن کار میکنه مردم به خدا قسم ما خیلی محرومی خیلی محرومی خیلی محروم قرآن چ است، قرآن چه کتاب زیبایی است الله تعالی عظمت قرآن عمل به قرآن توفیق به تلاوت قرآن توفیق بیادگیری قرآن الله نصیب همه منشوار بگرداند و مشکلات دین دنیای منشوار حل بفرماید الله در توفیقات حضرت شیخ الاسلام بیف ساید <تصفح> برنامه دیگه هست یا نه دوست دو هست دو عبد المال عبدالمی سا هست برنامه هست؟ باش باش چشم واقعا بازم مجدد تشکر می از دست اندرکاران این جلسه و از قرای عزیز استاد اسدی از کردستان تا اینجا این مشقت ها را تحمل میکنند بدون چشم داشت اینجا میاد اون سوهیل ما سوهیل سوهیل سوهیل اون سوهیل احمد ما که از کویت پاکستان میاد و پارا بر دیدگان ما میگذارد و لطف میکند و نعمتی که خدا بهش داده ما را هم میاد مستفید میکند الله در توفیقاتشون بیرساید قاری سلیمان قاری سپاهی حافظ عزیز مخمر و استاد ابو مصطفى سالارزهی من در رابطه با ابو مصطفى یک چیزی بگم که جلوی انسان نباید تعریف کرد ولی خدایی به شما میگم من معتقدم من قاری نیستم علف و بار خدایی بلند نیستم خدا می دانه بلند نیست. این توازن واقعیتی. ولی قاری ابو المصط... مصطفی درست من قاری نیستم. ولی حالا قراری حرف برای پسند کنه نکنه نمیدونم دونم. خدا رحم کنه. ولی خدایی در فن تجوید امامه. در فن تجوید بیشگی خاصی که داره. چرا من اینه میگم نه اغراق کنم؟ به خاطر که عجیب تجربهی داره. تجربهش بیشتر از علم شه. و لیسه علمه که تجربه تجربه زیاده ازش استفاده کنی به همه بهابیدی از همه استفاده کنی از همه قرراتون و برادر عزیز مقارسی حد حفظه الله نتونستن بی آلا مشکلاتی کشو از همه استفاده کنی همه خودتون رو دوست داشته باشید یک اونس، یک صفا، یک سمیمیت این دوسرت الهی رو در برداره. اختلاف ما رو بدبخت میبینه. اختلاف یک چیزی بلا تشبیه کسیفیه که ظالم و مظلوم رو میسوزانه. اینقدر خود اختلاف. تو خانه ها سعی کنی اختلاف نکنی. برادر با برادر اختلاف کنه. مطمئن باشه هر دوتا محروم میشن. اختلاف ما میبره. ما با محبت، با بحتت، با صمیمیت، ما رشد میکنیم. و اللهم انشور رشد میکنیم. ما را قرآن خدا داده ننگه که ما اختلاف کنیم. ما را خدا قرآن داده ننگ ما حسادت کنیم. ما با قرآن کیف کنیم. ما از قرآن استفاده کنیم. و به دنیا نشان بدیم که قرآن انسان می سازد. مشکلات دین دوچین. یای یا من شما حل کند و در آخر از سمیم قلب میگم به خدا قسم من در مقابل پدر روحانی مولن عبدالحمید جهان دیده و استاد سپاهی عزیزم و شرم بود سخن بگم ولی من چه دستور از کسی داشتم که امکان نداشت به خاطر ایشان اگر نه امیدوارم که این بلند شدن من را و هر صده من را به بیعدبی به گستاخی اگر نه اینجا علماء زیاده همه اینجا علم بلند کاش که خدا گواه من به پای خاک یک طالب علم جوزی می الله تعالی این اهل علم الله اینجا گذاشته الله در عمر همه برکت بده الله این این نور را و تمام نورهایی که روشن شدن خدا روز روز نار گسترش بده